دوره یونس به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است. <متحد> <متحد> <متحد> <متحد> الیف لام را اینها آیات کتاب حکیم است. آیا مردم تعجب می کنند که ما به مردی از جنس خودشان وحی کردیم تا جهانیان را از بدی برحضر دارد و به اهل ایمان نیز بشارت داد که آنها نزد پروردگارشان بلند مرتبه با این وجود منکران حقیقت گفتند این مرد یک جادوگر واقعی است بدانید که پروردگار شما است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید سپس به فرمان روایی بر مخلوقات پرداخ او تمام امور هستی را تدبیر می‌کند و بی اش هیچ شفاعت‌کننده‌ای وجود ندارد. این چنین است الله پروردگار شما پس فقط او را عبادت کنید. چرا از این حقایق پند نمی‌گیرید؟ بازگشت همه شما به سوی اوست و این وعده الهی به حق است. اوست که آفرینش را آغاز می کند، سپس به سوی خود باز می‌گرداند تا به کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل نیک و بر اساس عدالت بوده پاداش دهد بدانید آنها که حقایق را انکار کردند به خاطر دستاورد کفرارودشان شرابی از آب جوشان و عذابی دردناک در انتظارشان است اوست که خورشید را درخشان آفرید و ماه را فروغ بخشید و مراهلی برایش تعیم کرد تا شما به واسطه آن شمار سالها و حساب کارها را بدانید و خداوند همه اینها را جز به حق خلق نکرد به سان آیات و نشانه ها را برای اهل دانش شعر می دهد. در این چلقه شب و روز و آن خداوند در آسمان‌ها و زمین خلق کرده به راستی نشانه‌هایی است برای کسانی که حرمت خدا را نگاه می‌دارند کسانی که به دیدار ما امید و اعتقادی ندارند و به زندگی دنیا دلخوش داشتند و به آن تهی کردند و نیست کسانی که از آیات و نشانه‌های ما غافلند بیشک همه اینان به خاطر دستاوردشان جایگاهشان دوزخ است و کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل نیکو نیک و هست خداوند آنها را به واسطه همان ایمانی که دارند هدایت می کند. آن هم به بهشتهای پرنعمتی که نرها در زیر پایشان جاری است. دعواهم فی ها اللهم و تحییتهم سلام و آخر دعواهم انی الحمد لله رب العالمین دعای آنها درانجا این است که خداوندا تو پاک و بینخسی و برکت ورودشان سلام است و پایان دعایشان الحمدلله رب العالمین اگر با همون حرص و شتابی که مردم برای خود منفعت می طلبند، خدا برایشان شر میخواست بیتردید بی تردید همه مرگشان فرا رسیده بود پس کسانی را که به دیدار ما امید و اعتقادی ندارند به خود وامی گذاریم تا در گمراهی خیش حیران بمانند هنگامی که مصیبتی به انسان وارد می ما را چه در حال به پهلو خوابیده چه نشسته و چه ایستاده به دعا میخواند و چون آن مصیبت را از او دور سازیم وقتی زمان میگذرد چنان تغییر میکند که گویی برای رفع آن مصیبت هیچگاه ما را به دعا نخونده است عملکرد زیادخواهان این گونه در نظرشان جلوگر می شود ما مردمی را که قبل از شما بودند چون ظلم کردند و به پیامبرانی که با دلائل روشن به سویشان آمدند ایمان نیاوردند نابود کردیم بدانید این چنین مجرمان را مجازات می‌کنیم بعد از آنها شما را به عنوان جانشینانی در زمین انتخاب کردیم تا ببینیم شما عمل کردتان چگونه است و آنگامی که آیات روشنگر ما بر آنها خوانده می‌شود کسانی که به دیدار ما امید و اعتقادی ندارند میگویند یک قرآنی به غیر از این بیاور یا به چیز دیگری تبدیلش کن بگو سزاوار نیست که من خود خودسرانه را تغییر بدهم زیرا فقط از آن چه که به من وحی میشود تبعیت میکنم و اگر ما خدا کنم از عذاب روز بزرگ حراسانم بگو اگر خدا می‌خواست هیچگاه آن را بر شما عرضه کردم و از آن آگاهتان نمی‌ساختم. عمری در میان شما زندگی کرده‌اند. میدانید که اهل دروغ نیستم. چرا تعقل نمی‌کنید؟ واقعاً چه کسی ظالمتر از کسی است که بر خداوند دروغ ببندد و آیاتش را تکذیب کند؟ بدانید خداوند چنین مجرمانی را موفق و رستگار نمی‌کند. به جز خداوند چیزهایی را پرستش می کنند که نمی توانند آسیبی به آنها رسانند و به آنها نفعی بدهند و ادعا می کنند اینها شفیعان و واسطهای ما در پیشگاه خداوندند بگو آیا خدا را از چیزی خبر میدهید که در هیچ آسمان و زمینی سراغ ندارد پاک و بینقص از خداوند بزرگ و از پندارهای شرکاولودشان بلند مرتبه تر است مردم جز یک امتی واحد نبودند آنگاه میانشان اختلاف افتاد و اگر فرمانی از طرف پروردگار از قبل صادر نشده بود به خاطر اختلافشان کارشان تمام بود و میگویند چرا ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمیشود شود بگو غیب و نادیده ها از آن خداوند است. پس منتظر باشید من نیز پا به پای شما انتظار می‌کشم. وقتی مردم مسیبت زده را رحمتی می‌چشانی، برای آیات ما نقشه می‌کشد. بگو خداوند بزرگ هر حیله ای را سریعتر از شما تدبیر می کند و بدانید که رسولان آسمانی ما فریب کاری های شما را می نویسند اوست که شما را در خشکی و دریا به پیش می برند. آنگاه که در کشتی قرار میگیرید. گیرید هنگامی که بادهای موافق سرنشینان را در آرامش به سوی مقصد میبرد، خوشحال و مسرورند اما هنگامی که توفان بنیان کم از راه می رسد و موجها از هر سو آنها را محاصره می کند و گمان می که تمام است، خدا را از روی اخلاص فریاد می که اگر ما را نجات دهی، از این به بعد شکرگزار خواهیم بود اما هنگامی که خدا نجاتشان می‌دهد، دوباره به ناحق در روی زمین ظالمانه رفتار می کنند. ای مردم ستمهای شما به زیان خود شماست بدانید که بهره ناچیزی از زندگی دنیا میبرید، آنگاه بازگشتتان به سوی ماست و یقیناً شما را از عمل آگاه خواهیم کرد. بدانید مسئله زندگی دنیا چون آبیست که از آسمان نازل میکنیم تا به واسطه آن گیاهانی خوردنی برای مردم و چهارپایان پایان شود و انگامی که زمین به این نعمات آراسته شد، و مردم گمان کردند که کاملاً بران مسلطند به همه کاری خودش آمند فرمان ما هنگام و یا روز فرا می رسد و چنان همه چیز را از بیخوبون برکنیم که گویی دیروز هرگز چنین چیزهایی وجود نداشته است بدانید که ما این چنین این و نشانه ها را برای متفکرین چهر می دهیم خداوند به سوی سرای امن و آرامش فرا میخواند و هر کس را صلاح بداند به راه درست و نجات بخش راه نمایی می کند. کسانی که نیکی میکنند پاداششان نیکی و حتی افزونتر از آن است تاریک و ذلت چهرهاشان را نمیپوشاند. زیرا آنها اهل بهشتند و در آن جاودانه می مانند کسانی که دستاوردشان پلیدی و گناه است همانند آن چه مرتکب شده‌اند جزا میبیند ذلت سراپایشان را فرا گرفته و هیچ چیز نمیتواند آنها را از مجازات الهی مسون بدارد چنان سیه روی شدند که گویی پاره ای از شب تاریک است آنها اهل دوزخند و در آن جاودانه خواهند ماند و که در روز محشر همه آنها را جمع کنیم به مشرکان گوییم شما و معبودهایتان در جای خود قرار گیرید آنگاه بین آنها جدایی بیاندازیم. در حالی که معبودهایشان میگویند شما هیچگاه ما را پرستش نمی کردید. بین ما و شما شهادت خداوند کافی است و خدا گواه هست که ما از پرستش شما آگاه نبودیم در آنجا هر کس دستاورد اعمالش را دریافت می کند و همه به سوی خداوند مولای حقیقیشان باز می گردند و معبودهای دروغینشان ناپدید می شوند بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می و چه کسی صاحب حقیقی شنوایی و بینایی است؟ و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می و چه کسی امور آفرینش را تدبیر می کند؟ به زودی خواهند گفت الله به آنها بگو پس چرا حرمت نگاه نمیداری؟ الله پروردگار حقیقی شماست و بعد از مرز حق فقط گمراهی است روی سوی کجا کردید؟ و این چونین کلام پروردگارت که گفته بود فاسقان ایمان نمیآورند به حقیقت پیوست بگو آیا از میان این معبودهایتان کسی هست که چیزی خلق کند و باز زندهاش گرداند بگو این الله هست که خلق را میآفریند سپس زنده بازشان میگرداند با این حال چگونه از حق روی گردان می شوید آیا از میان معبودهای شما کسی هست که بتواند به به راه حق راهنمایی کند بگو خدا به سوی حق راهنمایی کند آیا کسی که توانایی هدایت به راه حق را دارد سزاوار طبعیت است یا کسی که این توانایی را ندارد و حتی خود نیازمند هدایت است چه بر سرتان آمده چگونه حکم می کنی؟ اکثر آنها فقط از گمان خود پیروی می کنند حالان که گمان و پندار انسان را از حق بی نیاز نمی سازد بیشک خداوند بزرگ از عمل آگاه است سزاوار نیست که این قرآن را جز به خداوند بزرگ نسبت دهند زیرا هم تصدیق کننده کتب آسمانی پیش از این است و هم شعر دهنده آنان و بدون هیچ تردیدی از سوی پروردگار جهانیان است. میگویند که پیامبر به دروغ قرآن را به خدا نسبت میدهد. بانها بگو اگر راست میگویید ای مثل آن بیاورید. به خدا از هر کس هم خواستید کمک بگیرید. بلکه آنها چیزی را تکذیب میکنند که به علم آن اشراف ندارند و از معنای ناب آن بیخبرند. کسانی که قبل از آنها بودند نیز همین گونه آیات را تکسیب کردند. پس بینگر عاقبت ظالمان چگونه بوده است؟ برخی از آنها به آن ایمان میآورند و برخی ایمان نمیآورند آورند بدان که پروردگارد بر احوال مفسدان آگاهی کامل دارد. و اگر تو را تکسیب کنند بگو من مسئول اعمال خیشم. و شما نیز مسئول اعمال خودتان شما از آن که من انجام می بیزارید، من نیز از عمل کرد شما بیزارم. برخی از آنها به سخنان تو گوش می دهند. اما آیا می توانی کسانی که حقایق را در نمی و نسبت به آن کرند شنوا کنی و برخی از آنها به تو می نگرند در حالی که نگاهشان خالی از بسیرت است آیا می توانی کسانی را که نسبت به حقایق کورند و بصیرت ندارند هدایت کنی؟ خداوند بر مردم هیچ ظلمی روانه می بلکه این خود مردماند که بخیشتن ظلم می‌کنند. روزی که خدا همه را محشور کند شنان احساس می کنند که گویی بیش از ساعتی از روز در دنیا نبودند آن هم اندازه ای که فقط یک دیگر را دیده باشند حقیقتا زیان کردند کسانی که دیدار الله را انکار نمودند و هدایت نیافتند پاره از مجازاتشان را که به آنها وعده داده این یا در دنیا به تو نشان دهیم و یا قبل از آن تو را بمیرانیم در هر حال بازگشت همشان به سوگ ماست ما و خداوند شاهد عمل کردشان است برای هر امتی است و چون پیامبرشان بیاید، در بین آنها به عدالت حکم کنند و هیچ ظلمی به آنها نشود و میگویند اگر راست میگویید این وعده چهی تحقق میگابد بگو غیر از آن که خدا بخواهد من مالک هیچ سود و زیانی نیستم برای هر امتی پایانی معین شده است هنگامی که اجل آنها فرا برسد نه ساعتی تأخیر می کنند و نه ساعتی جلوتر خواهند آمد بگو اگر عذاب الهی شب یا روز شما را فرا چه می کنید؟ پس این شتاب گناهکاران برای چیست؟ آیا پس از اینکه که عذاب واقع شده است ایمان میآورید؟ آورید؟ اکنون فرا رسید آنچه که شتابانه طلب می کردید سپس به کسانی که ظلم کردن گفته شود بچشید عذاب جاودانه را مگر به چیزی غیر از دستاوردتان مجازات می شدید و یستن بی اون ای و ربی لحق و ما ان مجزی. از تو میپرسند آیا آن وعده مجازات حق است؟ بگو آری به پروردگارم قسم که حق است و شما نمی توانید از آن جلوگیری کنید و اگر ظالمی تمام آن چرا که روی زمین است داشته باشد می خواهد همه را بدهد و خود را از عذاب الهی نجات بخشد و چون عذاب را بنگرد پشیمانی خود را نهان می کندند حالان که میانشان به عدالت قضاوت می شود و مورد ظلم واقع نشوند آگاه باشید آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست آگاه باشید که وعده خداوند حق است برچند اکثرشان نمیدانند اوست که زنده می کند و می, می لب بدون تردید به سوی او باز میگردید ای مردم از جانب پروردگارتان موعزهی برایتان آمده که شفاق دردهای درونیتان است و برای اهل ایمان سراسر هدایت و رحمت است بگو به فضل و رحمت الهی شادمان و مسرور باشند زیرا این از هر چه میاندوزند بهتر است بگو آیا به رزقی که خداوند به شما عطا کرده دقت کرده اید که خودسرانه را حلال و را حرام می کنید؟ بگو آیا چنین اجازه ای از خدا دارید یا اینکه به خداوند بزرگ افترا می بندید؟ کسانی که بر خداوند دروغ می بندند در رابطه با روز قیامت چه گمان کردند؟ همانا خداوند فضل و کرمش را بر مردم عطا می کند اما اکثر آنها ناسپاسند. مشغول هر کاری باشی و هرچه از قرآن بخوانی و هر عملی که شما مردمان انجام دهید بدانید که ما بر آن گواهی آنان از لحظه که در آن وارد شده اید به هیچ چیز نه در آسمان و نه در زمین از پروردگارت پنهان نمی ماند به هیچ ضرری چه کوچک و چه بزرگ؟ وجود ندارد مگر آنکه مقدراتش در کتابی روشنگر آمده است آگاه باشید که دوستان خدا هیچ ترس و یعص و اندوهی به خود راه نمیدند کسانی که به حقایق ایمان دارند و حرمت عوامر الهی را نگاه میدارند هم در زندگی دنیا و هم در زندگی جاودان آنها بشارت باد لهم البشرا في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم قول و سخن خداوند تعبیر ناپذیر است و این همان پیروزی بزرگ است سخنان آنها تو را اندوگی نکند زیرا تمامی عزت و اقتدار از آن خداست و او شنوا و آگاه است آگاه باشید هر که در آسمان ها و زمین است از آن خداست بدانید آن کسان که به جای خدا معبودان دیگری را برای نجات و آرامش خود می‌خوانند جز از گمان خود پیروی نمی‌کنند و آنها فقط دروغ می‌گویند او که شب را برای آرامش شما قرار داد و روز را روشنی بخشید. در اینها نشانه هایی است برای کسانی که نسبت به درک حقایق شنواگند. و با گفتند خداوند فرزندی برگزیده است، پاک و منزه است خدا. او از هر چیزی بینیاز است، زیرا آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و شما بر این ادعا هیچ دلیلی ندارید چرا در مورد خداوند چیزی را میگویید که با آن آگاه نیستید بگو کسانی که بر خداوند بزرگ افترا میبندند راستگار نمیشوند بهرهای از دنیا دارند اما عاقبت بازگشتشان به سوی ماست و ما به خاطر دستاورد کفرابودشان عذاب شدیدی به آنها میچشانید ماجرای نو را برای آنها بازگو آن هنگام که نو به قومش گفت ای قوم من اگر بودن من در میان شما در حالی که آیات خدا را یادآور می سخت و گران است بدانید که من بر خداوند توکل می کنم. شما نیز تمام قدرتتان و تمام معبودهایتان را جمع کنید و هیچ چیزی را فروگذار نشوید و بر من بشورید و مرا مهلت ندهید و اگر از حق روی بگردانید بدانید که من از شما مزدی نمی‌خواستم زیرا پاداش من با خداست و مأمور شدم تا از تسلیم شدگان فرمان خداوند باشم پس تکذیبش کردند اما ما او و همراهانش را که در کشتی بودند نجات دادیم و مقام جانشینی عطایشان کردیم و همه کسانی که آیات ما را انکار کردند غرق نمودی بنگر عاقبت کسانی که بر حضرشان داشتیم چه بوده است آنگاه بعد از نو پیامبرانی را با دلایلی روشن به سوی قومشم فرستادیم اما به آنچه قبلا تکذیب می کردند, دیگر بار ایمان نیاوردند و این اینچنین قلب تجاوزکاران را از درک حقیقت آجز میکنیم سپس بعد از آنها موسا و هارون را با معجزاتی به سوی فرعون و درباریانش فرستادیم اما آنها از پذیرش حق تکبر کردند زیرا قومی مجرمند و انگامی که حق از جانب ما برایشان آشکار شد گفتند این یک جادوی آشکار است و موسی گفت چرا حقی را که بر شما نمایان شده جادو می‌دانید؟ دانید حالان که جادوگران رستگار نمی شمد. گفتند آیا آمده ای تا ما را از تنت و آین آبا و اجدادی من منحرف کنیم و رهبری این سرزمین را خودتان به عهده بگیرید ما به شما ایمان نمی آوریم و فرعون گفت تمام جادوگران فهیم و دانا را بیاورید هنگامی که جادوگران آمدند موسی به آنها گفت آنچرا که می خواهید بیافکنید هنگام که افکندند موسا گفت آنچه شما آورده اید سهر و جادو است. و بیشک خداوند آن را باطل خواهد کرد زیرا خداوند عمل مفسدان را به موفقیت نمی رساند و خداوند حق را توسط کلمات قدرتمندش تثبیت می هرچند که مجرمان را خوش نیاگرد و از ترس آزار فرعون و درباریانش کسی به موسی ایمان نیاورد مگر تعدادی از فرزندان قومش بدانید که فرعون داویه برتری طلبی و تمامیت خواهی در زمین داشت و بی تردید او از کاران بود و موسی گفت ای قوم من اگر به خدا ایمان دارید و تسلیم حق شده اید پس بر او توکل کنید گفتند بر خداوند توکل کردیم پروردگارا ما را تحت سلطه ظالمان قرار مده و به رحمتت ما را از دست ناسپاسان نجات بخش و به موسا و برادرش وعی کردیم که برای قومتان خانههایی در مصر محیا کنید و خانه هایتان را متمرکز و روبروی هم قرار دهید تا منطبع امن گردد و در اختیار شما باشد و نماز را به جا آورید اهل ایمان را به عاقبت خیر بشارت ده و موسا گفت پروردگارا به فرعون و درباریانش در زندگی دنیا زینت و اموال فراوان عطا کردی تا بندگانت را از راه تو منحرف کنند تا به نوعی مایه امتحان مردمان باشند پروردگارا اکنون اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت نما تا از لذت حق محروم بمانند زیرا آنها تا عذاب دردناک را نبینند به هقایق ایمان نمیآورند خدا گفت دعای شما را اجابت کردم پس ثابت قدم باشید و از راه و رسم نادانان تبعیت نکنید و ما بنی اسرائید را به سلامت از دریا گذراندیم در حالی که فرعونیان به قصد ستم و آزار تغییبشان می کردن. و هنگام که فرعون قرل می شد گفت ایمان آوردم هیچ خدایی بجز آن که بنی اسرائیل با آن ایمان آورده وجود ندارد و من نیز از تسلیم شدگانم اکنون تا به حال که متکبرانه اسیان می کردی و از تبهکاران بودی امروز بدنت را از آب خارج می کنیم تا عبرتی برای آیندگان باشی زیرا بسیاری از مردم از عبرتهای ما قافلند ما بنی اسرائیل را در جایگاه صدق و راستی قرار دادیم و از چیزهای پاکیزه بهرمندشان کردیم اما آنها اختلاف به پا نکردند مگر بعد از آن که از حقایق آگاه شدند بدان که پروردگارد روز قیامت میان آنها و موارد اختلافشان غذابت خواهد کرد اگر در مورد آنچه بر تو نازل کردیم در شک و تردیدی از آنها که قبل از تو کتاب آسمانی را می سوال کن یقیناً حق از جانب گارت به تو رسیده است پس هرگز از تردید کنندگان مباش و از آنهایی مباش که آیات خدا را انکار کردند زیرا از زیان زدگان خواهی شد. کسانی که فرمان پروردگارد در مورد آنها تحقق یافته است، ایمان نمیآورند آورند. اگرچه تمام موجزات هم بر آنها آشکار شود. آنها تا عذاب درد را نبینند، ایمان نمیآورند آورند. اهل هیچیک از شهرها ایمان نیاوردند، تا آن ایمان بهرمندشان کند. مگر قوم یونس که به محض ایمان آوردن عذاب زلدت و خاری را در دنیا از آنها دور کردیم و تا زمانی معین از نعمتها برخدار نمودیم بدان که اگر خدا بخواهد همه مردم روی زمین به حقایق ایمان میآورند آورند آیا تو میخواهی مردم به اجبار ایمان بیاورند؟ آورند؟ هیچ کس وارد فضای ایمان نمی شود؟ مگر به اذن خداوند بزرگ و بدانید خداوند پلیدی را بر کسانی که عقل خود را به کار نمیاندازند مقرر کرده است بگو بینگرید چه چیزهایی در آسمان ها و زمین است هرچند که این نشانه ها و شدارها به بی ایمانان سودی نخواهد بخشید آیا حال و روزی را همانند آنچه چه برگزشتگان رفته است انتظار دارند؟ بگو، شما انتظار بکشید، من نیز پا به پای شما انتظار میکشم. سرانجام، پیامبران من و اهل ایمان را نجات میدهید، زیرا نجات اهل ایمان بر ما حقی واجب است. بگوی مردم، چنانچه تردیدی در دین من دارید، بدانید که من، کسانی را که شما به جای خدا میپرستید پرستش نمی کنم و فقط خدایی که جانهایتم را میگیرد گیرد می من مأمور شدم تا از اهل ایمان باشم به آیین تسلیم محض خداوند بودم روی بیاورم و هیچگاه شرک نورز و جزب مشرکان مباش هیچ چیزی را به جای خداوند به عبادت مخوام زیرا آنها نمی توانند نفعی به تو برسانند و نه آسیبی به تو وارد کند اگر چنین کنی بدعاً از ستمکاران خواهی بود بدان که اگر خداوند بخواهد مصیبتی به تو وارد کند هیچ کس توانایی آن را از تو نخواهد داشت مگر خودش و اگر برایت خیری اراده کند هیچ کس توانایی جلوگیری از فضل او را ندارد خداوند فضل و کرم خود را به هر یک از بندگانش که سلاح بداند می‌دهد و بیشک او بسیار آمرزنده و باگذشت است بگو ای مردم حق از جانب پروردگارتان آمده است پس هر که هدایت خیش را از آن برگیرد خیشتن را هدایت بخشیده و هر کس گمراه شود به زیان خود عمل کرده است و من مأمور به اجوار کردن شما نیستم از آنچه به تو وحی می‌شود تبعیت کن و در این راه استقامت بورس تا حکم خدا فرا رسد بدان که او بهترین حاکمان است وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ الله. و هو خیر الحاکمی صدق گفت بلند مرتبه از